بسم الله الرحمن الرحیم حالات خواهران پدر و مادری شقیقه رو خوندیم رسیدیم به بحث حالات خواهران پدری میت فوت کرده است خواهرانی دارد که فقط از طرف پدرش خواهران یعنی مادرشون متفاوت است ولی پدرش با میت یک والاخوات لآب لابن و وام اخوات پدری خواهران پدری مانند خواهران پدر و و ولهن احوال سابع هفت حالت دارند یک النصف للواحدة اگر یک خواهر بود نصف مال رو میبرد والثلثانی للاثنتین دو دوسوم مال سهم خواهران پدری است زمانی که اثنتینی خواهران پدری دو نفر باشند فصاعدت و بیشتر ولی چه زمان یک دوم اگر یک نفر بود و دو نفر بیشتر بودن دو, دو سوم رو میبرند اند عدم الاخوات لی و ام زمانی که میت خواهر پدر و مادری نداشته باشد خب میدانیم که خواهر پدر و مادری از دو جهت به میت وصل می‌شود ولی خواهر پدری از یک جهت لذا زمانی که میت خودش خواهر پدر و مادری داشت دیگه خواهر پدر و خواهر پدری ارس نمیبرد. برد مگر اینکه که داشته باشد که اون بعدا خواهد اومد ولهن از سودس حالت سومشون یک شیشم هست و برای آنهاست یک شیشم مال مال اخت لاب و ام زمانی که میت فقط یک خواهر پدر و مادری داشته باشد دقت بفرمایید اگر اگر میت خواهر پدر و مادری نداشت خب خواهر پدری اگر یک نفر بود یک دوم دو میبرد اگر دو و بیشتر بودند دو سوم میبرند اگر میت خودش دو خواهر و بیشتر داشت دیگه خواهران پدری نمیبرند اگر حالت سوم میت خواهر پدر و مادری داشت ولی یک نفر بود در این حالت خواهر پدری یک شیشم مال رو میبرد چون یک دوم رو خواهر پدر و مادری میبرد که یک نفر است یک شیشم رو خور پدری میبرد که یک چشون به اضافه یک دوم با هم میشه دو سوم و سهمیه خواهران دو سوم هست یعنی بیشتری صمیایی که دارند زمانی که خواهران حقیقی خواهران پدر و مادری خودشون دو سوم مالو ببرند دیگه چیزی باقی نمیمارد تا خواهر پدری ببرد ولی زمانی که خواهر پدر و مادری یک نفر بود اون موقع سهمش یک دوم است چیزی باقی می ماند از این دو دوم که نهایت سهم خواهران هست. پس حالت اول یک دوم بود حالت دوم دو, دو سوم بود ولی این زمانی بود که میت خودش خواهران دو و بیشتر خواهر پدر و مادری نداشت. اگر یک خواهر پدر و مادری میت داشت خواهر پدری لهون نه یک شیشم رو میبرد. تکمیل لثلثین تا دو سوم تکمیل شود. یعنی یک دوم اون برده است. یک شیشم این با هم دو سوم. ولا یرف نه الاختین لعب و ام خواهران پدری ارث نمیبرند اگر میت دو خواهر پدر و مادری داشت. اگر یک خواهر داشت یک شیشم میبرند اگر دو خواهر و بیشتر داشت دیگه خواهران پدری ارث نمیبرند این حالت چهارون هست هفت حالت دارند این حالت چهارم هست که زمانی که میت دو خواهر پدر و مادری داشته باشد یا بیشتر ارث نمیبرند خواهران پدری مگر الا ان يكون معهن اخ لالهن فيعسبهن مگر این خواهرای پدری برادر پدری داشته باشند که آنها را عصبه بگرداند که در این حالت که در این حالت خواهران پدر و مادری سهمی خود را میبرند باقی مانده رو چکار می‌کنیم والباقی بینهم للذکر مثل حظ الانثيين باقی من مال بین برادر و خواهران پدری بر اساس قاعده للذکر مثل حظ الأنثین هر مرد و برابر زن تقسیم می شود این حالت پنجم بود پس اگر میت خودش دو خواهر پدر و مادری داشت ارث نمی بود این حالت چهارم بود حالت پنجمشون این هست که اگر خواهران پدری برادری از خود داشتند برادری پدری عصبه میگردند و باقی مانده رو لذکر مثل حضر الانتین تقسیم میشد بینشان حالت شیشمشون و صادست و انیسرن مع معلبناتی حالت شیشم این هست که عصبه میگردن با دختران یعنی همانطور که خواهران پدر و مادری عصبه میگشتند عصبه معغیر در درس قبلی گفتیم اگر میت یک دختر داشت اگر میت دختر داشت اگر میت دختر داشت و خواهران پدر و مادری داشت دختران سهمشونو رو باقیمانده باقی رو به عنوان عصبه خواهران پدر و مادری میبردند، خواهران پدری هم همین حالت رو دارند حالت شیشمه خواهران پدری همین هست که این یا سر نه اصابتن مع البنات همراه دختران میت او بنات الابن یا دختران پسر میت لما ذکرنا همانطور که ذکر کردیم بدلیل آنچه که قبلا ذکر کردیم و بن الاعیانی والعلاتی كلهم یسقطون بالابن و ابن الابن و انصفل این حالت هفتومی خواهران پدری هست و حالت پنجومی خواهران پدر و مادری بود که ما اونجا ذکرش کردیم خواهران پدر و مادری، اعیان پدر و مادری اللات فقط پدری، اونای پدرشون یکیست، مادرشون متفاوت است خواهران پدر و مادری و همچنین پدری کل همی از قطون از عرص ساقط می شوند اگر بل به وسیله فرزند می پسر میت پس اگر میه دختر داشت داستان فرق کرد ولی اگر مط پسر داشته باشد دیگه خواهران پدری و مادری و خواهران پدری ارث نمیبرند. همین جمله معنیش می است بنو اعیانی وال اللای كل همی از قطول بل و ابن ابنی و انصفل خواهران پدر و مادری و خواهران پدری همهشان از ساقط میشوند به وسیله پسر میت یا پسر پسرش و؟ پسر پسر پسرش هرچه براید پاییمتر و بل ابی و همچنین وسیله پدر ساقط میشون بل اتفاق به اتفاق فقه اگر اگر میت پدر داشت دیگه خواهران چه شقیقه باشن چه فقط پدری ارس نمیبرن و بل جدی اند ابی حنیف رحمه الله تعالی این نقطه رو بدانید یک مسئله اختلافی اینجا آورده گفتیم قبلا ها که در میراس اختلاف خیلی کم است آیا خواهران؟ پدر و مادری یا خواهران پدری، اگر میت پدر داشته باشد که ارس نمی‌برند، آیا اگر پدر بزرگ داشته باشد، ارس می‌برند یا نه؟ امام ابو حنیفه رحمت الله میفرمایند با باوسیله جد ساقت می‌شوند و بلجد این واف حرف آدف است. یعنی وساقت می‌شوند و یک قتون بلجد، این واف حرف آدف است و ساقت می شوند به وسیله جد نزدیکی کی؟ نزده امام ابو حنیفه رحمه الله که فتواه خیلی از احناف همین هست و یز قطوع بان العلات ایو یعنی موقعی که گفت ابو حنیفه منظور شاگردانش و فقهای های دیگر نظریشون چیزی دیگر است. اما و يسقط بان العلات ايضا بالاخي لابن و امن خواهرای پدری خواهرای پدری همچنین همچنین پرزندان پدری همچنین ساقط میشوند خواهران پدری همچنین ساقط میشان ایذن بالاخ لی ابوا ام وسیله برادر پدر و مادری یعنی اگر میت برادر پدر و مادری داشت دیگه خواهران پدری از ارث ساقط میشوند ولی خواهران پدر و مادری نه چون برادرشون و اونا رو عصبه میگرداند اگر خواهران هم پدری باشند هم مادری و برادر داشته باشند ساقط نمیشوند که هیچ بلکه همون برادر اونارو چه میگرداند عصبه اما اما برادر پدر و مادری خواهر پدری رو عصبه نمیگرداند بلکه از میراث می میگرداند پس ساقط میشوند خواهران پدری همچنین به وسیله برادر پدر و مادری و بالوخت لابن و ام اذا صارت عصبتا و ساقط می گردند خواهران پدری به وسیله خواهر پدر و مادری ولی در هر حالت نه زمانی که این خواهر پدر و مادری عصبه باشد. خواهر پدر و مادری خواهر پدر و مادری خواهران پدری رو ساقط نمی گردند مگر زمانی که عصبه باشد. ما قبلا خوندیم در همین درس که. اگر میت یک خواهر پدری داشت و یک خواهر یک پدر و مادری داشت و یک خواهر پدری داشت خب خواهر پدر و مادری یک دوم رو میبرد و خواهر پدری یک ششم مال تکمله ثلثن رو میبرد. اینجا در این قسمت میگوید خواهران پدری ساقط میشن بالاخت با به وسیله خواهر پدر و مادر ولی چه زمان اذا صارت عسبه زمانی که اون خواهره پدر و مادری خودش به وسیله کسی دیگر عصبه بگردد زمانی که عصبه بگردد دیگر مثل پسر ساقت میگرداند چطور برادر ساقت میگردانید الان خواهر که عصبه شده است ساقت میگرداند خواهر پدری را موفق و پیروز باشید